یارم چو قده به دفت گیرد بازار بوتان شکست گیرد هر کس که بدید چشم او گفت کو محتسبی که مست گیرد در وقت فتادم چو ماهی تا یار مرا به شست گیرد در پاش فتادم بزاری زاری آیا بودان که دست گیرد خرم دل آن که همچو حافظ جامی زمه علاست گیرد